بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان الم تر ربک الفیل آیا ندیدی پروازگارت با اصحاب فیل چیکار الم فی آیا نقشه آنها را در سلالات تباهی قرار نداد وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ببرشاری پرندگان ابابیل را گروه گروه فرستادند ثمّهم من سجیل که با سنگ های کوچکی آنها را هدف قرار میدادند در نتیجه آنها را، همچون کا که شده قرار داد.